مصنوی معنوی مولوی برنامه بیست و یکم گفتن مهمان یوسف علیه السلام را که آینه آوردم ارمغان مصنوی تا هر بار که در وینگری روی خوب خود بینی و مرا یاد کنی گفت یوسف هین بیاور ارمغان موز شرم انتقاضا زد فغان گفت من چند ارمغان جستم تو را ارمغان در نظر نامت مرا حبه را جانب کان چون برم قطره را سوی عمان چون برم زیره را من سو کرمان آورم گر به پیش تو دل و جان آورم نیست تخمه کندرین بار نیست غیر حسن تو که آن را یار نیست لایقان دیدم که من آینه ای. پیش تو آرم چونور سینه ای. تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان آینه آوردمت ای روشنی تا چوبینی روی خود یادم کنی آینه بیرون کشید او از بغل خوب را آینه باشد مشتقل آینه هستی چه باشد نیستی نیستی بر گرتو ابلا نیستی هستی اندر نیستی بتو نمود مالداران بر فقیر آرند جود آینه صافی نان خود گرسنه است سوخته هم آینه آتش زن است نیستی و نقص هر جایی که خواست آینی خوبی جمله پیش هاست چون که جامع چست و دوزیده بود مظهر فرهنگ درزی چون شود ناتراشیده همه باید جزو تا دروگر اصل سازد یا فرو خاجه اشکسته آنجا رود که در آنجا پای اشکسته بود کی شود چون نیست رنجور نظار آن جمال صنعت طب آشکار خاری و دونی مسها برملا گر نباشد که کی نماید کیمیا نقصها آینه وصف کمال حقارت آینه عز و جلال زان که زد را زد کند پیدا یقین زان که با سرکه پدید است انگبین هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود ده اسبت آخت زان نمی پرد بسوی زلجلال کو گمان می برد خود را کمال علت بدتر پندار کمال نیست اندر جان تو زو دلال از دل و از دیدت بس خون رود. تازه تو این معجبی بیرون رود علت ابلیس خیری بوده است وین مرس در نفس هر مخلوق هست گرچه خود را بس شکسته بیند و آب صافی دان و سرگین زیر جو چون به شوراند تو را در امتحان آب سرگین رنگ گردد در زمان در تگ جو هست سرگین ای فتا گرچه جو صافی نماید مرتو را هست پیر راهدان پرفتن باغهای نفس کل را جوی کن جوی خود را کی تواند پاک کرد نافع از علم خدا شد علم مرد کی تراشد تیغ دستی خیش را رو به جراح سپار این ریش را بر سر هر ریش جمع آمد مگس تا نبیند قبح ریش خیش کس آن مگس اندی شاهو آن مال تو ریش تو آن ظلمت احوال تو برنهت مرهم بر آن ریش تو پیر آن زمان ساکن شود درد و نفیر تا که پندارد که صحت یافته است پرتاوه مرهم بر آنجا تافته است هین ز مرهم سرمکش ای پاشت وان ز madon مدان از اصل خیش. مرتد شدن کاتب وعی به سبب آنکه پرتو وعی بر او زد آن آیت را پیش از پیغامبر صلی الله علیه وسلم بخاند گفت پس من هم محل وعیم پیش از عثمان یکی نساخ بود کو به نسخ وعی جدی می نمود چون نبی از وای فرمودی سبق او همان را وا نوشتی ورق پرتو آن وی بر وی تافتی او درون خیش حکمت یافتی این آن حکمت بفرمودی رسول زین قدر گمراه شد آن بلفزول کان چه می گوید رسول مستنیر مرمرا هستن حقیقت در زمیر پرتوه اندیشش زد بر رسول قهر حق آورد بر جانش نزول همز نساخی بر هم ز دین شد عدوی مصطفی و دین بکین مصطفی فرمود که گبر انود چون سیه گشتی اگر نور از تو بود گر تو یمبوی الهی بوده ای این چون این آب سیه نک ای تا که ناموسش به پیش این آن نشکند بربست این او را دهان اندرون می سوختش همزین سبب توبه کردن می است این عجب آه می کرد و نبودش آه سود چون در آمد تیغ و سر را در رو بود کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسا بسته به بند ناپدید کبر و کفر آنسان بستان راه را که نیارد کرد ظاهر هاه را گفت اغلالا فهم به مقمهون نیست آن اغلال بر ما از برون خلفه هم سدن فه می نبیند بند را پیش و پس او. رنگ صحرا دارد آن که خواست، او نمی داند که آن سد قضاست. شاهد تو سد روی شاهد است، مرشد تو سد گفت مرشد است، ای بسا کفار را سودای دین، بندشان ناموس و کبر آن و این. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را کند پاره تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دبا. مرد را زنبور اگر نیشی زند طبع او آن لحظه بر دفعی تند زخم نیش چو از هستی تاست غم قوی باشد نگردد درد ساست شرح این از سینه بیرون می جهد لیک می ترسم که نومیدی دهد نیمه شو نومیدو خود را شاد کن پیش آن فریاد رس فریاد کن کی محب آفو از ما عفو کن ای طبیب رنج ناسور کهن عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد خود مبین تا بر از تو گر ای برادر، بر تو حکمت جاریه است، آنزه ابدال است و بر تو آریه است. گرچه در خود خانه نور یافته است، آن آنزه همسایه منور تافته است. شاکر کن، غره مشو، بینی مکن، گوشدار و هیچ خود بینی مکن، صد دریغ و درد که این آریتی امتان را دور کرد از امتی من غلام آن که او در هر ربات خیش را واصل نداند بر سمات بس رباتی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد گرچه آهن سارخ شد او سرخ نیست، برتوه آریت آتش است. گر شود پر نور، روزن یا سرا، تو مدان روشن، مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید، روشنم، برتوه غیر ندارم، این منم. پس بگوید آفتاب، ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید سبزه ها گویند ما سبز از خودیم شاد و خندان ما بس زیبا خدیم فصل تابستان بگوید ای امم خیش را بینید چون من بگذرم تن همه نازد به خوبی و جمال روح پنهان کرده فر رو پر و بال گویدش ای مزبلا تو کیستی یک دو روز از پرتب من زیستی غنج و نازد می نگنجد در جهان باش تا که من شوم از تو جهان گرمدارانت گور گوری کنند تعمه موران و مارانت کنند بینی از گند تو گیرد آن کسی، به پیش تو همی مردی، بسه. پرتب روح است، نطق و چشم و گوش. آتش بود در آب، جوش. آنچنان که پرتب جان بر تن است، پرتب ابدال بر جان من است. جان جان، چون وا کشد پاراز جان جان چنان گردد که به جان تن بدان سر از آن رو می هم من بر زمین تا گواه من بود در روز دین یوم دین که زلزلت زلزاله ها این زمین باشد گواه حال ها کوتو حدس جهرتن اخباره ها در سخن آید زمین و خارهها فلسفی منکر شود در فکر و زن گو برو سر را بر این دیوار زن نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل فلسفی کو منکر هنانه است از حواس اولیا بیگانه است گویا دو که پرتب سودای خلق بس خیالات آورد در رای خلق بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد بر او فلسفی مردی را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود گر ندیدی دیو را خود را ببین به جنون نبود کبودی بر جبین هر که را در دل شک و پیچانی است در جهان او فلسفی پنهانی است می نماید اعتقاد و گاه گاه آن رگ فلسف کند رویش سیاه الهزر ای مؤمنان کان در شماست در شما بس عالم بی منتحاست جمله هفتاد و دو ملت در تو است وحکه روز آن برارت از تو دست هر که او را برگ آن ایمان بود همچو برگ از بیم این لرزان بود بر بلیس و دیو از آن خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای. چون کند جان بازگونه پوستین، چند با ویلا برایت زهل دین. بردکان هر زرنما خندان شده است، زان که سنگ امتحان پنهان شده است. پرده ای ستار از ما برمگیر. باشند در امتحان ما مجیر. قلب پهلو می زند با زر به شب. انتظار روز می دارد. زهب با زبان حال زر گوید که باش. ای مزوغر تا برایت روز فاش. صد هزاران سال ابلیس لعین، بود زبدال و امیر المؤمنین بنجزد با آدم از نازه که داشت گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر که حسار دادند اند مراد بازگردان. بلعم باور با را خلق جهان، سغبه شد مانند عیسای زمان سجده ناوردند کس را دون او صحت رنجور بود افسون او پنجزد با موسی از کبر و کمال آنچنان شد که شنیدستی تو حال صد هزار ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده است پیدا و نهان این دو را مشهور گردانید اله تا که باشد این دو بر باقی گواه این دو دزد آویخت از دار بلند ورنه اندر قهر بس دزدان بودند این دو را پرچم بسوی شهر برد کشتگان قهر را نتوان شمرد. نازنینی تو ولی در حد خیش الله الله پا منی از حد بیش گرزنی بر نازنین تر از خودت در تگ هفتم زمین زیر آردت. قصه آد و سمود از بحر چیست تا بدانی کنبیا را است. این نشان خصف و قذف و سائقه شد بیان از نفس ناطقه های حیوان را پی انسان بکش. جمله انسان را بکش از بحر هوش هوش چه باشد عقل کل هوشمند هوش جزوی هوش بود اما نژند جمله حیوانات وحشی زادمی باشد از حیوان انسی در کمی خون آنها خلق را باشد سبیل، زن که وحشی اند از عقل جلیل. عزت وحشی بدین افتاد پست که مر انسان را مخالف آمده است. پس چه عزت باشد ای نادره، چون شدی تو همورن مستنفره. خر نشاید کشت از بحر صلاح چون شود وحشی شود خونش مباه گرچه خر را دانش زاجر نبود هیچ مازورش نمی دارد ودود پس چو وحشی شد از آن آدمی کی بود معظور ایار سمی لاجرم کفار را شد خون مباه همچو وحشی پیش نشاب و رما جفت و فرزندانشان جمله سبیل زان که بیعقلند و مردود و زلیل باز عقل کورمت از عقل عقل کرد از عقل به حیوانات نقل اعتماد کردن هاروت و مارود بر اسمت خیش و امیری اهل دنیا خواستن و در فتن افتادن. هاروت و چماروت شهیر از بتر خوردند زهرالود تیر اعتماد بودشان بر قدس خیش چیست بر شیر اعتماد گامیش گرچه او با شاخ صد چاره کند شاخ شاخش شیر نر پاره کند گر شود پرشاخ همچون خار پشت شیر خواهد گاو را ناچار کشت گرچه سرسر بس درختان می کند با گیاه تر و ای احسان می کند بر ضعیفی گیاه آن باد تند رحم کرد ای دل تو از قوت ملان را زنبوهی شاخ درخت کیه را ببرد لخت لخت لیک بر برگ نکوبد خیش را جز که بر نیشی نکوبد نیش را شعله را زنبوهی حیزم چغم کیرمد قصاب از خیل غنم پیش معنی چیست صورت بس زبون چرخ را معنیش می دارد نگون تو قیاس از چرخ دولابی بگیر گردشش از کیست از عقل مشیر گردش این قالب همچون سپر هست از روح مسطر ای پسر گردش این باد از معنی اوست، همچو چرخ کان اسیر آب جوست. جر و مد و دخل و خرج این نفس، از که باشد جز ز جان پرهوس گاه جیمش می کند، گه ها و دال، گاه صلحش می کند، گاه جدال، گه یمینش می برد گاه یسار گه گلستانش کند گاهیش خار همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر آد همچون اجده باز هم آن باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان گفت المعنی هو الله شیخ دین بهر معنی های رب العالمین جمعه اتباق زمین و آسمان همچو در آن بهر ربان هم لهاب و رقص خاشاک اندراب هم آب آمد به وقت استراب چون که ساکن خواهدش کرد از مرا سوی ساحل افگند خاشاک را چون کشد از ساحلش در موجگاه آن کند با او که سرسر با گیاه این حدیث آخر ندارد بازران جانب هاروت و ماروت ای جوان